ملاقات پاچاه با آن ولی که در خوابش نمودند. دست بکشاد و کنارانش گرفت. همچو عشقا در دل و جانش گرفت. پرس پرسم میکشیدش تا به صدر. گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی از صبر و مفتاح الفرج، ای لغایت تو جواب هر سوال مشکل از تو حل بی بیغیل و قال، ترجمانی هر هرچه ما را در دل است، دستگیری گیری هرکه پایش در گله، مرحبا یا مجتبا یا مرتزا، انتقب جا القضا زاق الفضا، انت مول القوم من لا يشتهی، قد ردا کلا لئن لم ينتهي